اصولا همه ای ما آدما تو زندگیمون یه سری اولویت داریم بعضی مون خیلی آدمای فرهنگی هستیم جوری که مثلا وقتی یه فیلم از کارگردان محبوبمون یا بازیگر مورد علاقمون اکرام میشه خودمون رو له تا بریم ببینیمش بعضی همون همه زندگیمون ورزشه فقط کافی بازیکن مورد همون بخواد مثلا تیمش عوض کنه تمومه دیگه میریم تو فکر به هم میریزیم اونگاه مثلا مدیر برنامه های طرفیم خلاصه همه اینا رو گفتم برسن به اینجا که درسته ما آدم تو زندگیمون اولویت های مختلفی داریم اما متاسفانه یا خوشبختانه یه اولویت مشترک واسه هممون هست اونم هم چیه؟ نون آقا جون نون خانم جون این نون لامت همونیه که بعضی بش میگن مایه بعضی بش میگن خرجی بعضی بهش میگن حقوق سر برج بعضی دیگه اصلا ای رقمش نره بالا میر... میلیارد اصلا نون به حسابش نمیارن حالا همه اینا به کنار مهم اینه که این نونه از چی و چجوری در بیاد خیلی از راه های نونسازی و نوندراری رو خودتون میدونید چون همه بالاخره به این شکلی توی این ماجرات دستید دارید و داریم امشب ولی میخوایم بریم سراغ کسایی که نونو نه از روی زمین که از مشاقلی در میارن که هرچند محل کارشون توی چاه و چاله نیست اما زیرزمینی به نظر میان شما اگه بخوایین لیستی از مشاقل زیرزمینی تهیه کنین کافیه یه نگاه به لیست ممنوعیت ها و های روی زمین بندازین. یعنی به ازای هر ممنوعیتی یه شغل زیرزمینی وجود داره که صدها و بلکه هزاران نفر دارن ازش نون میخورن و خب توی کشوری که آمار بیکاری بالاست ما باید قدردان مسئولیم باشیم که با لیست بلند بالای ممنوعیت‌ها باعث ایجاد این همه شغل زیرزمینی و منبع درآمد بر اقشار مختلف جامعه شدن. مشاقلی که گاهی حتتا آدم انتظارش رو نداره که به خاطر بعضی از ممنوعیت‌ها به وجود اومده باشن ولی خب در واقعیت به وجود اومدن دیگه چیکارش کنیم؟ مثلا یه نمونه براتون مثال بزنم. دیدین معمولا یه نوشته گنده سردار رستوران ها و زدن که رعایت هجاب اسلامی الزامی است یا چه میدونم مثلا از ارائه سرویس به مشتریان بعد هجاب معذوریم دیدین دیگه حتما دیدین حالا به تازگی رستوران های زیرزمینی باز شده که توی اون خانم میتونن بدون هجاب غذا بخورن الان میدونم همه از داریم میگی من میشه من داریم آره والا هم میشه هم داریم و این همش نیست تو این رستوران ها همراه غذا نوشیدنی‌های الکلی و نمیدونم خوراکی‌های غیر مجاز و اینام سرو میشه نه که فکر کنین کسی تو پارکینگ خونش میز سندلی صندلی گذاشته همسایه‌ها فک و فامیل و شما نهار میده ها نه آقا یه رستوران کامل با کلی گارسون و پیشخدمت و البته آشپز حرفه‌ای یک دو تام نیست بیشتر از این حرفاست دیگه خودتون تصورشو بکنین که ملت زیر زمین چه حرکتایی میزنن از چه راه‌های خلاقانه نون میخورن به خدا